هشتمین عادت زده تمبلی. انجام یک به یک پروژه ها بهانه که از میان می رود احساس استیصال می کنم و بیش از حد کار بر سرم ریخته است. وقتی به دلیل انبوه حجم کارهای احساس استیصال می کنیم با انجام همزمان چند کار سعی می کنیم دوباره سررشته امور را در دست بگیریم. مشکل اینجاست که انجام همزمان کارها بیش از آنکه مسئلهای را حل کند ایجاد مسئله می کند. معمولا وقتی توجهتان را به دو کار همزمان معطوف می کنید تلاشتان نیمه می شود و به همین ترتیب کمیت نتیجه کارتان نیز به نصف تقلیل می یابد. به جای انجام فعالیت های گوناگون در یک زمان بهتر از عادت یک به یک را در خود پرورش دهید. لازمه این عادت آن است که بلا فاصله دست به کار انجام هر فعالیتی که سر راه شما قرار گرفت بشوید. برای مثال بسیاری از مردم عادت دارند که ایمیل‌هایشان را از روی تلفنشان بخوانند. اما اگر شما اصل یک به یک را دنبال می‌کنید، باید که اپلیکیشن ایمیل را از روی تلفن همراهتان حذف کنید و تنها در صورتی پیام‌هایتان را بخوانید که آماده ی پاسخ دادن به آنها هستید. یک به یک همچنین استراتژی موثری برای پروژه های دراز مدت است بسیار پیش میآید که مردم در زمان واحد چند کار را با همدیگر انجام میدهند اما استراتژی تر آن است که ابتدا یک پروژه را تمام کنیم و بعداً پروژه دیگری را آغاز نماییم این عادت هم به شما کمک می کند تا در زمان مشخص کارهای بیشتری انجام دهید و هم اینکه برای انجام کارهایتان انگیزه بیشتری داشته باشید. برای مثال فرض کنید شما نقاشی هستید که با درآمد آیدی از انجام پروژه هایتان زندگی می کنید. همکنون شما پنج هفته برای کامل کردن پنج پروژه وقت دارید. گذینه ای که به نظرتان کارآمدتر است را انتخاب کنید. گذینه الف هر روز اندکی روی هر پنج پروژه کار می کنید تا در هفته پنجم هر پنج پروژه به اتمام برسند. گزینه ی هر هفته یکی از پروژه ها را تمام می کنید. اگر گزینه B را انتخاب کرده باشید درست گفته اید. علت آن هم به این شرح است. در هفته اول پروژه اول را تمام می کنید. در هفته دوم هم پول حاصل از اتمام پروژه اول را می گیرید و هم پروژه دوم را تمام می کنید. در هفته سوم هم درآمد حاصل از پروژه دوم عایدتان می شود و هم پروژه سوم را به پایان می رسانید. هفته که چهارم و پنجم را نیز به همین ترتیب ادامه می دهید. تنها در صورت انجام پروژه ها به صورت یکی پس از دیگری است که درآمد و در نتیجه انگیزه ی ادامه ی کار را به دست می‌آورید. اکثر مردم از این نکته غافلند. وقتی عادت کامل کردن آنچه آغاز کرده اید را در خود پرورش دادید، لوبهای خالی که انرژی روانی لازم برای انجام کار را در خود میکشند کشند سریتر پر می کنید. اجرای این عادت پرورش عادت انجام یک به یک پروژه ها مدتی زمان میبرد اگر راستش را بخواهید خود من هنوز هم در شکل دادن به این عادت کاملا موفق نشدم و پیش می آید که چند کار را همزمان با همدیگر جلو ببرم اما همیشه وقتی تنها یکی از پروژه ها را ادامه میدهم و بقیه را یا حذف و یا به آینده می میکنم نتیجه بهتری می گیرم بهترین راه اجرای این عادت بدین شرح است 1. تنها زمانی برنامه روزانه را شروع کنید که می دانید آن را به انجام می رسانید 2. پروژه هایتان را به ترتیب سودمندی و محدودیت زمانیشان اولویت کنید 3. آنقدر روی پروژه علف کار کنید تا کامل شود 4. سر جای اولتان برگردید و همین کار را با پروژه که به جیم و دال هم انجام دهید پنج، با انجام مرور هفتگی و تحلیل درستی اولویت از بندی از بازگشت به عادت پیشین انجام همزمان کارها جلوگیری کنید به زودی در خواهید یافت که انجام یک به یک پروژه ها تاثیرشگفتانگیزی بر افزایش بهرهوری شما دارد علاوه بر آن به دلیل ایجاد انگیزه و هیجان حاصل از پایان یافتن یک پروژه امکان به تعویق انداختن پروژه های بعدی ضعیفتر می شود.